بسم الله الرحمن الرحیم فصل المسح على الخوفین و شرائطه. فصل بعدی در رابطه با مسح برخوفین هست پوشیدینه های چرمی جوراوای چرمی که هست که می پوشند بشون موزه و خوف میگن از پوست هستند از چرم هستند بفرماس برخفين وشرائطش والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط مسح برخفين جائزست در وزو بس شرط بال ديك ان يبتدي لبسهما بعد كمال الطهارة شرطة اولينك الشروع كنات پوشش دو خفرا بعد از کمال طهارت بعد از اینکه طاهر باشه اینا رو پوشیده باشه وضویش قبلی شد که گرفت در حالتی که وضو داره اونا رو بپوشه این شرط اول دو لمحل غسل الفرض من القدمین شرط دوم اینه که اون دو تا خف اون دو تا موزه بپوشند محل شستن فرز از دو قدم پارو یعنی اون جاهایی که شستنشون در دو قدم پا فرزه اون رو باید این دو تا خوف پوشنده باشند سه و این مما یمکنه تتابع المشی علیه شرط سوم این است که ممکن باشد پی در پی رفتن در آن بتونه با آنها راه بره رفتن در تخف ممکن باشد خب ویمسح المقیم البته شرط چارمی رو هم بعضی اضافه کردند که پاک باشند خب این دیگه جز اون شرایطی قرار میگیره که صوب و پوشیدنی پاک باشند و یمسحو المقیمو یومنو ولیلتن خب حالا که مسح جایزه در مسح بر خف در وضو یعنی نیازی نیست که این رو بیرون بیاره موقعی که وضو میگیره به جای شستن پا بر این دوتا خف مسحه بکنه وقتشو داره بیان میکنه اینجوری هم نیست که طرف یک ماه هست اینا رو بیرون نیاره بلکه وقت گذاشته و المقیم یوما و لیلتا. شخص مقیم مسح میکنه دو خوفش یک شبان روز. والمسافر 3 تئامن بلایالیهنها و شخص مسافر مسح میکنه بر خوفهاش سه شبان روز. و ابتدا المدتی خب این زمانش از چی شروع میشه؟ از زمانی که اینا رو پوشیده یا نه وقتی دیگر اینو داره بین میکنه و ابتداء المدتی من حینی یحدیتو بعد لبس الخفه ابتداء مدت شروع میشه از زمانی که بیوزو میشه بعد از پوشیدن خفه نه از اون زمانی که اینا رو میپوشه چرا؟ چون زمانی که اینا رو پوشنده که خب از قبل وضو داشته وقتش پس شروع نشده یعنی قبلا پاها رو پس از زمانی که اینا رو پوشود و شرطش که وضو داشته باشه اینا رو که پوشید از زمانی که بیوزو شد وقتش شروع میشه بعد از پوشیدن خفا فا این مسحف الحضاری ولی یه مسئله دیگه رو مطرح میکنه فا این مسحف الحضاری ثم صافر او مسحف سفری ثم اقام اگر مسح کرد در حزار زمانی که مسافر نبود زمانی که در شهر بود پس زمانی که مسح کرد در حزار سپس مسافرت او آو مسح فی السفر یا اینکه در سفر مسح کرده بود تو مقام اومد و مقیم شد اینجا چه وقتی رو در نظر میگیره؟ آیا مال مسافر رو تکمیل میکنه یا مال وقت انسان مقیم رو میگه اتمه؟ مسح مقیمن کامل میکنه مسح شخص مقیم را بله پس چه در حزر بود و رفت به مسافرت یا برعکسش در مسافرت بود و اومد مقیم شد مدت شخص مقیم رو تکمیل میکنه و یا يبطل المسح بثلاثه اشیاء مسح بر خفین باطل میشه باسی چیز یک بخلعه ما با کشیدنشون طرف اومد یکی یزینارو یا جفتشونو کشید یعنی اینکه پاره شد دو و انقضاء المده با تمام شدن مدت مصح باطل میشه دیگه نمیتونه ادامه بده مصح کنه با باید اینا بیرون بیاره پاش رو بشوره بعد از وضوع اینا رو که پوشون دوباره وقتش شروع میشه سه و مایوجی بلغسل و هر آنچه که غسل و ایجاب میکنه واجب میکنه باید این مصح بر اینا دیگه باطل میشه باید اینا رو بیرون بیاره و غسل کنه مثلا جنابت طرف جوراب شد خب اینا رو باید بیرون بیاره و غسل بکنه بعدن دیگه که استهارت پوشید خب از اون موقع وقت شروع میشه اون فرق میکنه. ولی مسح کردن بر این خفها بر ادامه قبلی باطل میشه با جنابت یا آنچه که غسلو ایجاب میکنه فاصلون التیمم و فاصل فصل بعدی, بعدی در رابطه با تیمم و احکام تیمم است و شرایط تیمم 5 اشیاء شرایط تیمم پنج چیز است یک وجود العث عذر به سفرن او مرز عذر داشته باشه چه در سفر باشه چه اون عذر مریضی باشه پس یک وجود عذر چون اون سفر باشه چی مریضی؟ دو و دخول وقت سلط داخل شدن وقت سلط بله با داخل شدن وقت نماز که داخل شد میادو تموم میکنه سه و طلب الماء، طلب کردن آب چون اومده فا الم تجیدو اگر آبو نیافتید و این دیگه طلب ماست، است میشه البته این هم بعد از دخول وقته چهار و تعذر استعماله و اعوازه بعد طلب تعذر استعمال آب نتونست آبو استفاده بکنه و همچنین احتیاجش به آب بعد از طلب به خاطر تشنگی خودش یا تشنگی گسفندی که داره یا حیوان محترم ای که داره پنج و تراب و تاهر پنجمین شرط خاک پاک هو غبار و غبار داشته باشه فا ان خالتهو جسون او رمل لم یجزی یا بعضی کتابه میرن لم یجز میگه اگر نخلود شد با اون خاک گچ یا شین لم یجزی اکتفا نمیکنه درست نیست بل لم جزه درسته یعنی بهتره خب و فرائ ااربع و ااشیه فراعز چیز می باشد چه در تیمم فرض می باشند چهار چیز می باشند یک عنی نیت البته میارند که سنت اینه که در کتاب دیگه شون البته خب بریم پس یک نیت دو و مسح الوجه مسح کردن صورت سه و مسح الیدین مع المرفقین مسح دو دست همراه با مرفقین چون بعضی از فقها های مرفقین و شرط ندونستن چهار و ترتیب و ترتیب هم چه ذکر یعنی مسح وجب و مسیدین با این ترتیب و سننه 3 اشیاء سنت های تیمم سه چیز می باشند یک التصمیتو بسم الله گفتن دو و تقدیم اليمن علی الیسرا مقدم کردن راست چپ یعنی ابتدا راست تیمم بش، مسح بشه بعدش چپ سه والموالات پی در پی باش یعنی در تمام هم موالاتو سنت می دونند والذی یبطلو اتیمم هم ثلاثتو اشیاء آنچه که تیمم رو باطل میکنه سه چیزه یک کلو ما عبطل الوضوء هرانچه که وزور باطل میکنه تیمم هم باطل میکنه این یک اضافه بر آن دو و الماء في غير وقت الصلاة دیدن آب در غیر وقت نماز یعنی شخص تو نماز نباشه آبو ببینه اینجا میگه تمومش باطل میشه و وقت نماز باشه باید بره وضو بگیره و با وضو نماز بخونه اما اگر در نماز بود شوافه میگن نه دیگه اینجا نماز شدامه میده برخلاف احناف که میگن نه دیگه در نماس هم که بود خلاص سه و تو مرتد شدن کسی از دین برگشت خب این که البته واضح هست و صاحب الجبائریم سحو علیها صاحب جبیره هم بر جبیره اش مسح میکنند حالا که بحث مسحه جبیره همون شکست بستو میگن در وسایل رو که اعضای که میشکنان میشکنند، می اونا رو می‌بندند بهشون میگن جبیره با چند تا چوب یا چند تا نیرو قدیمی ما درست میکردن، بعدن اون جوین شکسته رو باش می‌بسن تا کج نشه اینو میگن جبیره خب صاحب جبیره حالا گچ هم جایمون جبیره هست اون روزا گچ گیرند خلاصه و صاحب جبیره هم صحواله ها برون جبیره خودش مسح میکند و یتیمم و تیمم میکند و یسلی و نماز میخواند ولا اعادت علیه انکار وضعها على طهره و اعاده نماز نیست بر او اگر این جبیره رو گذاشته بود بر پاکی یا اینکه در اعضای تیمم نبود یا اینکه اون جبیره در اعضای تیمم نبود و تیمم لكل فریضه بله در بحث تیمم میگن و تیمم میکنه برای هر فرضی مذهب امام شافعی رحمت الله علیه که تیمم میکنه برای هر فردی هر فرضی رو خاص براش جداگانه تیمم میکنه ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل اما در نفلها ونماز ميخند بايك تيمم هر دلش خاص از نماز هاي نافل بس در نفلها هر شي دلش خاص ميخونه پنجا رکعت هم باشه بايك تيمم اما در فرزنا